دوستان خوبم، به دانشکردی کوچک کتاب مقدس، جایی که شما مهمترین کتاب دنیا، کتاب مقدس کلام مقدس خدا رو مطالعه می کنید، خوش اومدین. مطالعات ما به کتاب بسیار عملی اول قرانتیان رسیده، و بلان به ما توصیه های شبانی پولوس رسول، درباره روابط، ازدواج و توصیههایی درباره درباری ها گوش می کنیم. و الان ما به توصیه های شبانی پولوس رسول درباره روابط، ازدواج و توصیه هایی درباره مجررت ها گوش میکنیم. کنیمیم. میکنم درس امروز رو از دست ندین. حالا با هم به معلممون ملحق میشیم همونطور که در جلسه قبل گفته بودیم در این قسمت وارد باب هفتم کتاب اول قرنتیان میشیم که بزرگترین باب در مورد ازدواج از پولوس و در کل کتاب مقدس هست من از شما خواستم که به آیه کلیدی 26 از باب هفتم توجه کنید جایی که پولوس تمام مشورتهای خودش رو در مورد ازدواج میده و میگه به سبب بحران زمان حاضر این آیه به ما کمک میکنه تا این قسمت رو بفهمیم بحران زمان حاضر در قرنتیان شکنجه و آزار و عذیت مسیحیان بود اگه شما تجربه شکنجه دارید، اگه جهانی که شما در اون هستید برخلاف جریان معموله و در کشور شما جنگ هست، اگر کشور شما در جنگ شکست خورده و تمام مسیحیان کشور شما حالا در حال شکنجه شدن هستند، پس صحبتهای پولس در اول قرنتیان باب هفت رو میتونید به راحتی درک کنید. آیه کلیدی که پولس در پرتو بحران زمان حاضر یا شکنجه به ما میده موضوع اصلی قرنتیان باب هفته برای همینه که آیه ابتدایی باب هفتم اینطور میگه مرد را نیکوست که زن را لمس نکند پولس مخالف ازدواج یا رابطه جنسی در ازدواج نیست پولس از آیه سه تا هفت به شما این رو نشون میده در این آیات پولس خیلی شفاف میگه که مرد و زن باید با هم روابط جنسی داشته باشند و فقط هدف این ارتباط برای باروری و بچه به دنیا آوردن نیست. پولس مخالف روابط جنسی نیست و با زنان مشکلی نداره. پولس میگه من بر این گمانم که به سبب بحران زمان حاضر برای انسان نیکو باشد که در همان وضعی که هست باقی بماند. بعد میگه مرد مجرد نگران امور خداوند است. نگران اینه که چگونه خداوند را خشنود سازد در حالی که مرد متعهل نگران امور این دنیاست، نگران اینه که چگونه همسرش رو خوشنود کنه این پایه و دلیل مشورت پولوس که میگه نباید ازدواج کنید و برای مرد نیکوس که زن را لمس نکند وقتی که در باب هفتم جلو میریم شاید کسانی بگن خب اینجا قسمتی از کتاب مقدس که توسط الهام خداوند نوشته نشده به این خاطر که پولس در مورد این موضوع صحبت میکنه و میگه من میگویم نه خداوند بعضی از مردم میگن این الهام خداوند نیست بلکه نظر پولسه بعضی از مردم میگن تعلیمات پولس در تضاد با تعالیم مسیحه چیزی مهمتر از حقیقت نیست مثلا به این باب دقت کنید پولس خیلی محتاطانه به موضوع ازدواج میپردازه و یا جنبه خاصی از ازدواج که پولس باهاش مواجه میشه او خیلی ساده میگه نه من بلکه خداوند این حرف رو به شما زده بعد او چیزی رو که خداوند گفته تکرار میکنه با این حال اگه خدا در مورد شرایط خاصی از ازدواج تعلیم نداده مثل ازدواج یک مسیحی با غیر مسیحی شما خودتون وقتی که مسیحی باشید و کسی که دوستش دارید مسیحی نیست چیکار میکنید عیسی درباره این نوع ازدواج توضیحی نداده پس پولس میگه من چیزی از خدا دریافت نکردم ولی به شما میگم که چی فکر میکنم بعد در پایان این فصل پولس مینویسه من فکر میکنم که روح خدا رو دارم پس پولس با الهام خداوند فکر میکنه پولس خیلی با دقت این کار را انجام میده نه اینکه با مسیح در تضاد باشه بلکه با توجه به تعالیم مسیح در مورد ازدواج سعی میکنه که بهترین نظر رو بده صحبت های پولس اشاره به این موضوع نداره که بخشی از این باب از الهام خداوند نیست به یاد داشته باشید تمام کتاب مقدس الهام خداونده به یاد داشته باشید دوم تیموتاوس سه شانزده میگه تمام کتاب مقدس الهام خداونده وقتی با دیدی باز و از بالا به این باب نگاه میکنید امکان داره که این هم به نظرتون بیاد باب ازدواج به چندین پاراگراف تقسیم شده ولی در بعضی از کتاب مقدسها این تقسیمات لحاظ نشدند او به سوالاتی که قورنتیان از او درباره ازدواج کرده بودن پاسخ داده. تا حالا شده که به یک طرف مکالمه تلفنی گوش کنید و بر اساس حرفهایی که اون یک نفر میزنه سعی کنید تجسم کنید که نفر دوم از اون خط چه چیزهایی را میگه؟ وقتی همسر من پشت تلفن صحبت میکنه همیشه میگه او ها او او نه او پنجاه بار این کار رو تکرار میکنه و من با خودم فکر میکنم اونی که اون اونور خطه چی داره میگه همونطور که شما این پاراگراف رو در باب ازدواج نگاه میکنید باید متوجه بشید که پولس به سوالاتی که قرنتیان از او کرده بودند جواب میده پولس این باب رو اینطوری شروع میکنه و اما در خصوص مسائلی که به من نوشته بودید و بعد از این شروع به جواب دادن سوالات میکنه همونطور که جواب ها رو میخونید شما فقط یک طرف گفتگو رو دارید سعی کنید که طرف دیگه مکالمه رو مجسم کنید. همونطور که میبینید، پاراگراف ها به این صورت هستند. آیه یک و دو، هشت و نه و بیست و پنج تا چهل که در انتها پولوس به سؤالی که در مورد مجرد هاست جواب میده. در بین اونها، دو مدل مجرد وجود داشت. مجردانی که باکره بودند که به طور خاص در آیات بیست و پنج تا چهل بهشون اشاره شده، و مجردانی که قبلا ازدواج کرده بودند و حالا مجرد بودند. حالا در این کلاس اونها رو در گروه دوباره مجرد شده ها قرار میدیم نه اینکه اونها زنان و مردانی بیوه هستند بلکه اونها طلاق گرفتن. ظاهرا همونطور که پولس با گروهی از مردم که دوباره مجرد شده بودند برخورد میکنه او چیزی در مورد وضعیت ازدواجی خودش میده. او به بقیه برای بحران زمان حال توصیه میکنه که ازدواج نکنن ما میدونیم که اعضای شورای سنهدرین مجبور بودند که ازدواج کنند. پولس هم زمانی عضو شورای سنهدرین بوده پس نتیجه میگیریم که او ازدواج کرده و حالا یک مرد زن مرده است. ظاهرا زن پولس مرده با اینها زمانی که پولوس این باب رو می نوشته او مجرد بوده یادتون باشه که پولس نوشته در بحران زمان حاضر کسانی که مجرد هستند ازدواج نکنند. در باب هفتم آیات 25 تا 40 پولس حقیقت دیگری را آشکار میکنه. همونطور که شما آخرین و بلندترین پاراگراف این باب رو مطالعه میکنید وقتی پولس میگه و اما در خصوص باکره ها توجه داشته باشید که این مشورت پولس با این جمله همراهه. در بحران زمان حاضر پولس به کسانی که دوباره مجرد شدند میگه برای اونها بهتره که ازدواج نکنند. او میگه اگه کسانی ازدواج کردند و نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، ادامه بدن و ازدواج کنن. اگه اونا ازدواج کنن گناهی نمیکنند. ولی بهتر اینه که ازدواج نکنه. پولوس این توصیه رو به ما میکنه. او در مورد اینکه چرا مجرد باشیم دلایل محکمی میاره. او در آخرین و بزرگترین پاراگراف این باب میگه مرد مجرد نگران امور خداونده. نگران اینکه چطور خداوند رو راضی کنه در حالی که مرد متأهل نگران امور این دنیاست و نگران اینه که چگونه همسرش را راضی کنه پولس به کسانی که نمیتونن پاکی جسمانیشون رو حفظ کنن هشدار میده او میخواد اونها را از افتادن در این مشکلات جسمانی کمک کنه پولس میگه اگر میخواهید امور خداوند رو انجام بدید نگران هستید که چطور خداوند رو خوشنود کنید پس مجرد بمونید این تنها به مشکلات زمان حاضر ربطی نداره. او اینجا دلیلی برای مجرد موندن به ما میده. او به ما میگه که همیشه باید افرادی در بدن مسیح باشند تا در مورد این موضوع دعا کنن تا دچار سردرگمی نشیم. پس به اونها میگه ازدواج نکنید. پولس میگه که تجرد یک عطیه است. ما باید از این باب نتیجه بگیریم که تجرد یک هدیه است که خدا اون رو به افراد میده. اگه خدا به کسی این عطیه رو بده، اونها به عنوان یک انسان مجرد باید شاد و کامل باشند. وقتی من مجرد بودم، در مورد این موضوع دعا می کردم. ولی تا 26 سالگی این رو نفهمیدم که من عطیه تجرد رو ندارم. پس تصمیم گرفتم که ازدواج کنم و خانواده تشکیل بدم. من خیلی خوشحالم که این تصمیم را گرفتم در حضور خداوند من منبع شادی و آرامشی دارم که همسر و خانوادهام هم هستند. با این حال باید بگم که به عنوان شبانی که خیلی سرش شلوغه، باید خیلی از وقتها اولویت هام رو طبقه بندی کنم و با توجه به میزان تعهدی که نسبت به ازدواج و خانواده دارم اونها باید قسمت بزرگی از وقت و انرژی من رو برای خودشون اختصاص بدن برای من مهم نیست که شما چقدر برای خدمتتون فکر می ولی اگر تصمیم بگیدید که ازدواج کنید باید برای تعهدتون نسبت به همسر و خانوادهتون بها پرداخت کنید وقتی ازدواج می کنید تعهد شما اول باید برای خانوادهتون باشه و بعد برای خدا با این حال وقتی که ما یک شبان مجرد رو در بدن مسیح می نباید شکه بشیم یادمه که ما یک برنامه نهار با یک خادم اسکاتلندی داشتیم. او تقریبا همسن من بود. در اون زمان ما اوایل دهه چهل بودیم. دوست خادم مشترکمون از ما خواست تا یک برنامه نهار ترتیب بدیم و او را ببینیم. همونطور که قرار گذاشته بودیم و داشتیم با همدیگه آشنامی شدیم من از این خادم پرسیدم جورج تو خانواده داری؟ تو ازدواج کردی؟ او جواب داد نه من ازدواج نکردم. من نتونستم تعجب خودم رو پنهون کنم و گفتم تو ازدواج نکردی؟ من طوری این سوال رو کردم که انگار باور کردنی نبود. او گفت من خودم رو وقف خدا کردم و دوست ندارم که مانعی بین من و خدا قرار بگیره. خب، البته من خودم رو سرزنش کردم. وقتی او گفت که ازدواج نکرده، من نباید طوری به او ظلم زدم که انگار دیوانه است. ما نباید از دیدن یک شبان مجرد شوکه بشیم. باید طبق آخرین پاراگراف از باب ازدواج بهش احترام بذاریم. بقیه پاراگرافهای باب ازدواج هم خیلی مهمند. از آیه سه تا هفت ظاهرا جواب پولس به این سوال هست که یک ازدواج موفق و شاد برای یک زوج چگونه باید باشد؟ تصور کنید هر دو نفر در یک زوج مسیحی هستند. ایمان دارند و در خداوند ازدواج شادی را انجام دادند. پولوس به اینها هایی داره. ظاهراً اونها از پولوس درباره ارتباط فیزیکی یک ازدواج پرسیده بودند. پولوس راهنمایی‌هایی در مورد این ازدواج میکنه و میگه مرد باید وظیفه زناشویی خود را نسبت به شوهر ادا کند. زن بر بدن خود اختیار ندارد، بلکه شوهرش و مرد نیز بر بدن خود اختیار ندارد، بلکه زنش. پس یکدیگر را محروم نکنید. مگر با رضای یکدیگر و برای مدتی تا وقت خود را وقف دعا کنید سپس باز به یکدیگر بپیوندید مبادا شیطان شما را به سبب ناخیشتنداری به وسوسه اندازد من این حکم را نمی‌کنم بلکه تنها جایز می شمارم. در این بخش پولس به ما مشورتهای میده که نشون میده روابط جنسی تنها برای باروری و به دنیا آوردن بچه نیست پولس به ما نشون میده کلماتی که در آیه ابتدای این باب به کار میبره خارج از موضوع و متن نیست او میگه مرد را نیکوست که زن را لمس نکنند شما باید به این جمله از بالا نگاه کنید پولوس منظور کلیش رو توی این قسمت نمیگه پولوس مشورتهایی در مورد ازدواج خوب رو در چندین آیه میده پولوس میگه اول از همه روابط زناشویی نباید محور زندگی باشه پولوس میگه زن بر بدن خود اختیار نداره بلکه شوهرش و مرد نیز بر بدن خود اختیار نداره بلکه زنش. او میخواد بگه که شوهر در این رابطه وارد شده تا در اختیار زنش باشه و زن نیز وارد این رابطه شده تا در اختیار شوهرش باشه. مشورت بسیار زیباییه. اگر مهور زندگی شما مسیح باشه؟ اون موقع است که روابط زناشویی کار میکنه و شما وارد بعد فیزیکی ازدواج میشید. پولوس در رابطه با روابط زناشویی قاعده دیگری رو میده. پولوس میگه چیزی به اسم چی درسته و چی غلط وجود نداره. چیزی به اسم نرمال و غیر نرمال وجود نداره. چیزی که وجود داره احساسات مشترکه. مشترک بودن یک کلمه مهم در این بخش از ازدواجه. پولوس میگه به جز یک دلیل شما نباید از انجام روابط زناشویی پرهیز کنید. او اینجا اصلاً درباره مثلا سردرد صحبت نمیکنه. او میگه شما تنها زمانی میتونید از روابط جنسی پرهیز کنید که با توافق همدیگه باشه. با توافق همدیگه میتونید برای دعا از این کار پرهیز کنید. با توجه به حرفای پولوس این تنها دلیلیه که میتونه اجازه بده شما پرهیز کنید. اگر شما یک فرد مجرد روحانی و جوان هستید دوست دارم چیزی رو به شما بگم هدف از بعد جنسی زندگی شما لذت بردن از روابط زناشویی در چارچوب همون چیزیه که پولس در این آیات اولیه یعنی قرنتیان باب هفت در مورد راهنمای ازدواج از اون صحبت میکنه ارزش رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج برای شما درست مثل هیجانات، اسکیت بازی کردن توی پارکینگه اگه شما ازدواج کردید و فرد روحانی هستید میخوام شما رو تشویق کنم تا باور داشته باشید که یک زوج روحانی باید بهترین رابطه جنسی رو در جهان داشته باشن از روح القدس بخواهید تا به شما بصیرت درک صحبت‌های پولس رو در این آیات عطا کنه و همینطور از روح القدس بخواهید تا به شما کمک کنه تا مشورتهای پولس رو در آیات سه تا هفت این باب فوقلاده کتاب مقدس در خصوص ازدواج در زندگی خودتون اعمال کنید همونطور که پولس مشورت های الهام شده خودش در این باب فوقلاده رو به ما میده او یک قاعده خیلی مهم در رابطه با زندگی روحانی زوجهای مسیحی هم به ما میده پولوس تعلیم نمیده که زوجها با هم دعا کنند و همیشه کنار هم باشند پولس این دستور روحانی رو میده که زوج‌های ایماندار باید با هم توافق داشته باشند ولی به صورت جداگانه دعا کنند و روزه بگیرند اگرچه خیلی چیزهای روحانی هست که زوج‌ها باید با هم درمیون بذارن. ولی پولس به اونها توصیه میکنه که جداگانه دعا کنند پولس نشون میده که پیوند و رابطه روحانی زن و شوهر با اینکه ازدواج کردند ولی هنوز شخصیه بدیهیه که اونها مثل یک زوج روحانی با هم دعا میکنند ولی زندگی روحانی اونها کماکان شخصیه به طور جداگانه به خدا ربط داره. اونها نمیتونن همدیگر رو به عنوان یک زوج به صورت روحانی قضاوت کنن. اونها نمیتونند عبادت روحانی خودشون رو با هم در میون بذارن. بلکه به طور جداگانه و شخصی در رابطه با عیسی مسیح قرار دارند. پولوس در این پاراگراف میگه که بهترین دفاع در مقابل فساد اخلاقی تنها حمله کردنه. وسوسه خیلی وحشتناکه. در مقابله با فساد اخلاقی پولوس در قرنتیان به اون اشاره میکنه. وقتی شما به بازار میرید یا بیرون از خونه هستید، بدیهیه که چهره هایی رو میبینید که باعث میشه شما رو وسوسه کنند. بهترین مقابله با این وسوسه اینه که توی خونه به اون پاسخ بدید. پولس به کسانی که ازدواج کردن و یک زوج روحانی به حساب میان میگه که باید بهترین رابطه فیزیکی رو داشته باشند. یک رابطه خوب جسمانی بهترین دفاع در مقابل وسوسه فساد اخلاقیه. در جلسه قبلی ما مشورت پولس در مورد ازدواج رو در قسمت اول باب هفتم از کتاب اول قرنتیان متوجه شدیم. پولس در مورد یک ازدواج شاد مشورت داده و و حالا در آیات ده و یازده این باب پولس ظاهرا این پرسش رو پاسخ میده وقتی دو ایماندار با هم ازدواج کردند آیا میتونن از همدیگه طلاق بگیرند در پاسخ به این سوال پولس میگه حکم من برای متعهلان این هست نه حکم من بلکه حکم خداوند که زن نباید از شوهر خود جدا شود اما اگر چنین کرد دیگر نباید شوهر اختیار کند و یا اینکه باید با شوهر خود آشتی نماید اما اگر چنین کرد دیگر نباید شوهر اختیار کند و یا اینکه باید با شوهر خود آشتی نماید مرد نیز نباید زن خود را طلاق گوید بعد پولس به تعلیم عیسی در ازدواج تاکید میکنه و تعلیم میده که رابطه ازدواج رو باید ادامه داد پاراگراف بعدی از آیه 12 شروع میشه و تا آیه شانزده ادامه داره جایی که عیسی در مورد اون مشکل راهنمایی نکرده. مسئله اینه فرض کنید که یک زوج قبل از اینکه مسیحی بشن ازدواج کردند. مردم بنا به دلایل مختلفی ازدواج میکنن شاید اونها به این خاطر که هر دو دوست دارند از مواد مخدر استفاده کنند و به مهمونی برند با هم ازدواج کردند. اینجا دلیل خاصی که نشون بده چرا ازدواج کردند وجود نداره. به هر حال به عنوان یک انسان غیر ایماندار اونها تصمیم گیرند که ازدواج کنند حالا یکی از اونها مسیحی میشه وقتی شما خودتون رو در این رابطه ببینید مثلا شما مسیحی شدید ولی شریک زندگیتون ایماندار نیست چیکار میکنید اگر شما داخل این پاراگراف جستجو کنید مشاهده میکنید که پولس در اینجا توصیه خیلی منصفانه ای میکنه براساس اساس صحبت های پولس انتخاب با غیر ایمانداره. نه کسی که ایمان داره. پولس برای کسی که ایمان داره می نویسه اگر شما همسر بی دارید که می خواهد با شما زندگی کند، پس شما با او زندگی کنید و شب و روز برای او دعا کنید. ممکن است که شما باعث ایمان آوردن همسر خود بشید. اینجا یک کتاب مقدس شبیه اول پتروس باب سوم آیات سی هفته که به شما چیزهایی میگه که انجام بدید. با این حال، بر اساس حرف های پولوس اگر قرار در خصوص این زندگی تصمیمی گرفته بشه شریکی که ایماندار نیست باید این تصمیم رو بگیره شاید اونها به شما نگاه کنند و بگن تو اون کسی که من ازدواج کردم نیستی من با تو ازدواج کردم چون تو مهمونی رفتن رو دوست داشتی ولی تو دیگه اون آدم نیستی اگه اونها به شما بگن ببین من میخوام دیگه از این رابطه برم بیرون دیگه من نیستم. پولس میگه مانع نشوید بگذارید جدا شوند. و پوسکنده بگویم که من واقعا به این حرفها ایمان دارم. از اونها جدا بشید. بذارید که برند. پولس به برادران و خواهرانی که این گونه اسیر شده اند یک راهنمایی میده. حالا تمام این تفسیر میتونه جور دیگه ای تفسیر بشه. پولس وقتی میگه اگه خواستند که جدا شوند چی رو میخواد بگه؟ ممکنه که منظور پولس این بوده باشه به زودی وقتی اونها با کس دیگه ای میخوابند اونها از تعهد ازدواجشون کنار میرن اگه اونها میخوان که فقط با شما زندگی کنن بر اساس ازدواجی که خدا در نظر گرفته شما با اونها بمونید این قسمت به شما میگه که لزومی نداره با شخصی که نمیخواد با شما زندگی بکنه ادامه بدید منظور پولس از این حرف چیه؟ در چنین وضعی شوهر یا زن مؤمن اجباری نداره با او زندگی کنه بعضی ها میگن با توجه به این صحبت ها اونها آزادند که از اون شخص جدا بشن ولی اونها آزاد آزاد نیستند و نمیتونند دوباره ازدواج کنند بعضی ها هم میگن که اجباری نیست این معنیش اینه که اونها آزادند و حتی میتونن که دوباره ازدواج کنند تمام چیزهایی که پولوس به ما تعلیم میده تفسیر خاص خودش رو داره امروزه وقتی شبانی با مسائلی مثل ازدواج، طلاق و ازدواج دوباره روبرو میشه، این باب میتونه یه همکار مؤثر براش باشه. این باب میتونه اون شبان رو راهنمایی کنه. تمام شبانها نمیتونند که به یک شکل این باب رو تفسیر کنن. ولی یک شبان باید تلاش کنه که درک و تفسیر درستی از مفهوم این باب داشته باشه تا بتونه بهتر با مشکلات مواجه بشه. وقتی من با این مشکلات روبرو میشم، به این نتیجه میرسم ما نیاز داریم که به معزه سر کوه برگردیم و بعد از اون هم به کوه سینا بریم جایی که خدا ده فرمان رو به انسان داده قانون خدا از محبت خدا سرچشمه میگیره خدا به دلیل اینکه مردم رو دوست داره به اونها قوانین خودش رو میده ما باید قوانین خدا رو در پرتو عشق خدا بررسی کنیم قبل از اینکه قوانین خدا رو در زندگی افراد به کار ببریم بذارید این رو تکرار کنم ما باید قوانین خدا رو در پرتو عشق خدا ببینیم سپس اونها رو در حوزه های مختلف زندگی افراد از جمله ازدواج، طلاق و ازدواج دوباره به کار بگیریم فرض کنید که شخصی در سنین جوانی ازدواج کرده و در همون دوران نوجوانیش قبل از اینکه مسیحی بشه طلاق گرفته بعد از اون در 20 سالگی یا 30 سالگی مسیحی شده آیا ما به اون شخص جوان میگیم به خاطر داستانی که در قبل از ایمانشون داشتند، اونها دیگه نمیتونند ازدواج کنند؟ اگر شما این کار را بکنید دقیقا کاری رو کردید که فریسیان انجام میدادن این یک عمل فریسی در تفسیر قوانین خداست برای تندرستی انسان برای مثال قانون روز سبت و استفاده اون برای ضربه زدن به انسان خدا قانون روز سبت رو برای نیکویی و تندرستی به انسان داد اما فریسیان اینطور تفصیل می کردن که این قانون برای مشقت انسانه این حرکت باعث عصبانیت عیسی می شد ایسا به فریسیان گفت خدا اول قوانین رو خلق نکرد و بعد انسان رو در قالب آن خدا اول انسان رو آفرید و قوانینی برای خوشبختی و تندرستی انسان داد چرا خدا قوانین ازدواج رو به انسان داد؟ خدا این قوانین رو داد چون می‌خواست که زن و مرد یک زندگی شاد خانوادگی داشته باشند. ممکن قوانین ازدواج به کسی داده بشه که در یک خانه شاد زندگی می‌کنه. استفاده از این قوانین باعث میشه که اون شخص همیشه خانه شادی داشته باشه. من تفسیر پولس رو انتخاب نمی‌کنم تا باعث سختی و مشقت ایمانداران بشم. پولس کسیه که میگه و ما را کفایت بخشیده که خدمتگزاران عهد جدید باشیم. اهدی که بر کار روح خدا استوار است نه بر آنچه نوشته ای بیش نیست زیرا نوشته میکشد لکن روح حیات میبخشد من تفسیر پولس رو برای سختی و مشقت ایمانداران انتخاب نمی کنم پولس کسیه که میگه و ما را کفایت بخشیده که خدمتگزاران عهد جدید باشیم عهدی که بر کار روح استوار است نه بر آنچه نوشته ای بیش نیست زیرا نوشته میکشد لاکن روح حیات میبخشد در پاراگراف دیگری در این باب یعنی آیات 17 تا 24 ظاهرا پولس برای کسانی نوشته که این سوال را از او پرسیدند من قبلا سه بار ازدواج کردم و شوهرم هم زمانی که ما ایماندار نبودیم ازدواج کرده و این چهارمین ازدواج برای من و پنجمین ازدواج برای او هست حالا هر دو ایمان آوردیم ما در مورد ازدواج های قبلیمون چیکار کنیم؟ من چنین زوجی رو قبلا میشناختم. یک زوج پیر عزیز اونها این مسئله رو یک شب با من در میون گذاشتن وقتی که اونها ازدواج کردند مرد سه بار ازدواج کرده بود و زن هم چهار بار. با این حال اونها در یک تعطیلات بزرگ به نیویورک میرند و در یک مرکز تفریحی بزرگ با همدیگه ملاقات میکنند. اونها نمیدونستند چطور شد که تصادفی سر از حمایش در درآوردن. اونها به طور عجیبی ایمان آوردن و سوال اونها این بود: ما با ازدواج های قبلیمون چیکار کنیم؟ اونها پیش شبانی رفتن. البته او شبان دانایی نبود و در مورد این مسئله از او مشورت خواستن. او گفت: شما باید برید و اولین کسانی رو که باهاشون ازدواج کرده بودید پیدا کنید. اگر اونها ازدواج نکرده بودند، باید با اونها ازدواج کنید. و باید این رابطه‌ای رو که درون هستید تمام کنید در حال حاضر شما توی گناه زندگی می کنید. این زوج همدیگر رو خیلی دوست داشتن و نمیتونستند این کار رو بکنن ولی بر طبق حرف اون شبان اونها هفت سال بود که در گناه زندگی می چون بعد از هفت سال این بار با یک شبان حکیم و عاقل صحبت کردند. شبان دوم میدونست که باید به اونها اول قرنتیان با به حرف رو نشون بده جایی که پولس با چنین مشکلاتی روبرو میشه، و به اونها پاسخ میده شما میتونید تصور کنید که اونها هم همین مشکلات مثل مشکلاتی که در کلیس های بود رو داشتن توجه کنید که سه بار در این پاراگراف آیات 17 تا 24 پولس میگه زیرا آن که در قلامی از سوی خداوند فراخوانده شده است آزاد خداوند است با آن نیز که در آزادی فراخوانده شده است قلام مسیح است پولس اینجا چی میگه او مشورتی رو با ما در میون میذاره که خودش حس کرده و بر مبنای کتاب مقدسه وقتی خدا شما رو دعوت کرد وضعیت تعهل شما چطور بود؟ این یکی از حرفهای مورد علاقه پولس در قرنتیانه در آیه نهم از باب اول این نامه پولس میگه امین است خدایی که شما را به رفاقت با پسرش خداوند ما عیسی مسیح فراخنده است این همون چیزیه که مسیحیت در موردش صحبت میکنه. مسیحیت میگه باید زندگی در صمیمیت با عیسی داشته باشیم. پولس به نجات قرنتیان با فراخوانده شدن اونها توسط خدا اشاره میکنه. پولس میگه وقتی که انجیل رو به یهودیان بشارت میداده، اونها انجیل رو قبول نکردند. وقتی که به یونانی ها بشارت داده، یونانیها گفتند که انجیل یک حماقت محض و به انجیل خندیدند. با این حال کسانی که فرا خوانده میشن انجیل که قدرت خداست باعث نجات زندگی اونها میشه وقتی پولس می نویسه کسانی که فراخانده شدید منظورش کسانیه که نجات پیدا کرده اید دقت کنید که پولس چطور از این کلمه فراخوانده شدگان استفاده میکنه پولس میگه زمانی که فراخانده شدید کدامتان ازدواج کرده بودید وضعیت تعهل شما زمانی که فراخوانده شدید چطور بود؟ از خدا بخواید که وضعیت تعهل شما رو برکت بده توصیه پولس وقتی, ایم... وقتی که زن و شوهر ایمان آوردند اینه اگه فقط یکی از اونها ایمان آورد پولس در پاراگراف قبلی توصیه هایی کرده انتخاب با بی ایمانانه مشورت پولس اینه از خدا بخواید تا وضعیت تعهل شما را برکت بده ببینید وقتی که با مشکلات ازدواج طلاق و ازدواج دوباره مواجه میشید بزرگترین مسئله اینه که زمانی که فراخوانده شدید وقتی که نجات پیدا کردید وضعیت تعهل شما چگونه بوده. باب ازدواج یک سؤال سختی هم داره، سؤال اصلی و اساسی اینه. ازدواج از نظر خدا چیه؟ این سؤال خیلی مهمه من معتقدم که نظر خدا در مورد ازدواج اینه چیزی را که خدا پیوند داده، انسان نمیتواند جدا سازد. این نظر خدا در مورد ازدواجه. دو نفر به طرف هم دیگه میرن و میخوان که با هم ازدواج کنن. نه تنها به دلیلی دنیاوی، بلکه به این دلیل که اونها به این کار ایمان دارن و تصمیم گرفتن که خاست خدا در با هم بودنشون رو اجرا کنن. خدا اونها رو رهبری میکنه تا یک تن بشن. این نظر خدا در مورد ازدواجه سوال دیگه ای که مطرحه اینه که چه چیزی در مورد همه ازدواج وجود داره؟ آیا همه بر طبق نظر خدا ازدواج می تنها به این دلیل که ورقه ای رو امضا کردند این همون پیمان ازدواج در نظر خداست؟ حالا ما به این سوال پاسخ میدیم پس تکلیف ست هزار نفری که با هم زندگی می بدون اینکه ورقه های ازدواج دولتی رو امضا کنند اونها چی میشن آیا اونها هم ازدواج کرده محسوب میشن این سؤال مهمیه تنها ورقه ای کاغذ نشانه ازدواج کسی نمیشه اگه یک زوج قبل از اینکه در خداوند باشند پیش هم باشند اونها قبل از اینکه پیش خدا باشند ازدواج کردند یادمه که من از یک زوج خادم که حدود 48 سال در چین خدمت کرده بودند و همین سال سالگرد ازدواجشون رو جشن گرفته بودند پرسیدم آیا تا به حال به طلاق فکر کردید؟ مرد پیر جواب داد او نه ولی زنش به شوخی گفت ما به فکر کشتن همدیگه افتادیم ولی به فکر طلاق نه چرا این زوج پیر افرادی که در خدا بودند هیچ وقت فکر طلاق را هم نکردند به این خاطر که پیوند اونها این بوده خدا ما رو به هم پیوند داده دیگه هیچ مهم نیست که چه احساسی نسبت به اون دارم ممکن از اون بدم بیاد ممکنه یه روزی با نظر او موافق نباشم و پشتش نیستم ولی همیشه با او هستم به این دلیل که خدا ما رو به هم پیوند داده ببینید این بنیاد پایدار یک ازدواجه این تنها اصلیه که شما باید بر اساس اون تصمیم به ازدواج بگیرید از کجا باید بدونید که تصمیم درستی در انتخاب شریک زندگیتون گرفتید؟ عوامل سازگاری بسیار زیاد هستند. وقتی که من یک دانشجو بودم، از یک مرکز مشاوره دیدن کردم. اون مرکز مشاوره نمودارهایی در مورد ریتم زندگی و سایر معیارهای ازدواج زوجها داشت. تحقیقات اونها نشون میداد سازگاری متغیری در ازدواج زوجها وجود داره که معمولاً بیشمار شمار هستند اگر شما یک فرد مسیحی هستید و تصمیم دارید که ازدواج کنید به این موضوع فکر کنید بیش از شش میلیارد نفر در دنیا وجود دارند و نیمی از اونها از جنس مخالف شما هستند ولی شما میتونید با یک نفرشون ازدواج کنید اما چیزی که بین همه اونها مشترکه اینه که همه میخوان ازدواج کنند در این وضعیت شما چطور میتونید تصمیمی درست یا غلط بگیرید اساس انتخاب ما باید بر اساس راهنمایی الهی باشه. اگر اساس انتخاب ما راهنمایی الهی نباشه، پس ازدواج تبدیل به بزرگترین قمار در جهان میشه. کتاب مقدس خیلی شفاف در مورد نقش و قانون ازدواج با ایمانداران صحبت میکنه. تنها قانونی که خدا داده اینه. کسانی که میخواهند ازدواج کنند، تنها میتوانند با مسیحیان ازدواج کنند. این قانون، مثل دیگر قوانین خدا باعث خوشبختی ما هست. عزیزان ما اطمینان داریم که توصیه‌هایی که پولس اونها رو از خدا الهام گرفته جواب بسیاری از سوالهای ماست. چیزهایی که ما آموختیم اینه که نگاه ما باید به خدا بند و کلام او برای حکمتی در تمام روابط ما مخصوصاً در خانواده خودمون باشه. کلام خدا در مورد روابط خانوادگی ما مخصوصا ازدواج زیاد صحبت کرده یکی از دلایلی که ازدواج ما زیر حملات قرار داره به این که ازدواج ما تصویری از عشق خدا به کلیسای خودشه این دلیلیه که شیطان آرزو داره روابط خانوادگی ما رو خراب کنه مخصوصا خانواده که در کلیسا هستن دائما اینه که خدا از این درس ها در زندگی شما استفاده کنه و شما در ایمانتون تشویق کنه و باعث سه برکت شما و خانوادتون بشه. فیض خدا بر شما و خانوادتون باشه. همطور که شما تلاش میکنید تا باعث افتخار خدا در روابطتون بشید.